الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى أبي بكر الصديق وعمر سليم وعثمان رضي الله عنهم أجمعين اللهم صلنا وجمعيه دیگه روایاتی که فعلا در کتابه مشهوره به اصطلاح وجود داره بعد از کردیم که مرحوم و حاملی در این فایده سادسه در آخر خاتمه در خاتمه کتاب وجوهی رو برای مطلب ذهر تا صفحه 203 و این شاید به جهد بعد از اون اشکال و جواب که توضیح کافی داده شد عبارت رو از مرمون شیخ بهایی در محشب و نه نگاه می خود. نادر می‌شرم می‌دان از مصطفی بن خطاب و کتب علما و المعالفه تفسیر و الجرح والتعدیل ان اصحاب ما امامیه خانش جناب اون امکان شیعه الحق عللا سمعا کره امامت بعضی از درین مفی اکثر مراتب شیعه کسایی که بعد انکار میکردن جزات با کامل از ذون مجادله در متکلم بلکان تظاهر هم به نهدار و تلاهم هم عشد تظاهر هم به حاضر آمن مثل اینه اموم نم داره, داره با این مرادش چیه یکسی در راه بود و جدا شد از او برکاردشون با آمن عشد بوده و اما اینها و بله و اما هاولا المخزولون فلا میخوند اصحابون امامیه. ذروه چون دائره و حتی با برودی که با سنیا داشتن بهتر و خصوصا الواقفه اشون مخصوصا رو کلمه الواقعه تاکید کردن فعل امامیه قانون فقاهت اجتناب و هم حتی هم کارو رسن هم معتوب منظور این در داریم که تغییر به منتوره شده یعنی سرهای باران خورده یه کلاب زدتی اصلا بهند که این مطلبی چیشون داره که چیه نصفاً فکرستانی که در مذهبه هر بودن بردودا شدن شدت بیشتری داشتن روشن نید راجع به واقفیه چند بار من توضیح دادن واقفیه دو جور رویدم کندم یه گرده ایشون اونم مثلا حوائد فاک خیلی نسبت به حضر زاد اهانت میکردن این مشکل کار این بود الفاضل دشتی رو به کار میبودن و به اهانت زاد حانت شونم ازدهیشون نه موسی جفت پرس نکرد و زنده و این که علیه به موسیل میگه من امامم اشتباه میکنه تعبیرشون مثلا خبر درست بشتن رسیده ایشون در مدینه هست در وقات در بغداد. نشون مرد و اما ما خبر ندار یه ادهشون در این حد بودن و این مصدر را از کردم در هست کردن در کتب علاویان ولی حصول هست که خواب مرمون شهد و مفید تصریف نکنه شهد و مفید و امسن هم مرمون نجاشی هم در اده هست وقفیه داره, داره کارن یوان دو این یوان دو پل وقت اشاره اینه اما ما تو فتریه این اناد رو نداریم تو زیدیم نسبتا نهارا یکی دو مورد شدت که حملی به خیلی و الا بهش اصطلاح این برخوردی که ایشون تصور میکنه بیشتر مال کارهایی بود که اونها انجام دادن مثلا راجعه به داره که از ساده مبلغی رو فرست برای کسی که در قیام مسلحانه بازهی بودن و مجرور شدن نفری چهار دینار به اونها پول رسدن خبانی که میده از در حکومت رسفاً تعیید یک نظام یک حرکت مسلحانه است و این خودش پیگیری توندی دارد. بیداره پس این طور نبوده که آدادشون حالا بر علاجه. بعد در عمت ما علیه مسلام کنو یه نهان شیعتم هم هم مجالسته بر. و اصحاب ما یه هم به دعا علیهم هم و یه قولون انه کفار مشرکون زنادقه و انه هم شرم و همه شیخ باهی این کفار و زنادقه رو موشت کنم دست بوده دو تا با هم دیگه خط نشه چون یک عرض حریزی داشت یا چیه یکه دست غلات غلوب عقالبی بودن ایمان ده خدا و پیغمبر نداشتن و واقع هم همینطور بوده دیشان واقعا زنادره زنادقه در که بودن این که امام همه مخالفین رو بگه کفار و موشت و عده ای از اینها به اصطلاح به حسب ظاهر و سیاسی بودن و دنبال به دنبال مسائل سیاسی بودن و از نظر عملی هم التزام عملی نداشتن از ما یه قروب و عقایدی داریم یا قروب و عملی که اینها نماز, نماز نمی کنند اون گرفتن و این کارها رو منصوب بحث بهتو و به با خودشون باز ممکن بود حتی حرکت اجتماعی و قیام مسلحانه و تشکیل دولت رو ما خودشون نمازه میخوردن این اونی که آمده یه مقداری ایشون مرموم شیخ باهی به نظرم در بعد, بعد از این مقدمه که خود مقدمه روشنیست که ایشون چی فرمده هم قبل علماء و ناوستی ما المتاخرین و, و من هم روای خن رواها و جلون من سقاط الامامیه اما اهد من ها اولاد، یعنی از یکی از این واقفی ها یا زنازه و با تعبیرشون مشرکون و اول و علیها و و به ها اگر رواید کردن من علم هم و حالهی فقبول هم و قول هم به سختها لاغود من ابتناهیه علاوش هم صحیح مثلا از علی ابن عبی حمزه که در حقه او گفته شده کذب این باید کذب رو ابن فضال فتحی راجع به ابن عبی حمزه گفته اینم از چون در کشی آمده نجاشی نداره که تعبیر به کزا این تعبیر داره کشی ها این این تعبیر راجع به پدر گفته که بریب ندی همزه باشه یا راجع به پسر گفته که حسنه بریبه نسخ کشیه که میروه هم داره تعبیر به کزا ایشون میگه اگر نعقل میکنن لا بد من اطناعی یا علا وجن صحی لا یدتر را گفتی علا قد فهلهی هم ولی عراوی مثل منها دا حالو چطور مثلا فرسویم یکی از زرزا میگهر از اینجور کردی حدیث نتو بکنه وقت این توجیه هاتیست این توجیه هاتی در کلمات شیخ هم آمده شیخ توسی در کتاب خوده که انیتون سما اومن قبل عدودی هنالحق به اصطلاح معروف هستانشینی در حال استغانه که هم یک کون سما همه بی حال استقامه مطارب اینه از ایشون قدولی او بعد توبتی و روزویی ایلال هم از این هم حتی از دار که از ارکان فتنی هست گفته شده توبه کرده بوده این هم از این گفته شده او انما نقل اینما وقع من اصل لذی علفه و شهر همه قبلن رفت. این هم هست باقی هست. حالا کلمه اصل اینز هم مراد ایشون دقیقا همین رو قبول بکنید اما اینه که چون خیلی روزو توضیح زیاد بدیم این والا عبارات ایشون می‌کنه این کلمه اصل رو با یه واژه‌ی صحبت می‌کنیم الان من اجوانش رو می‌کنم ان شاء الله روزی تفسیر بیشترش این که ایشون داره مثلا اصل هلله الله هوش در عن و قبل الله این یک نقطه‌ی ترفیق شد خود من شده به واهی این دقیق نظر ندوش این من شواهلش رو پیدا کردی کسانی که بیشتر کلمه اصل به کار بردن واقفی ها هستن شون نگیدم تا به کسی پیدا کرد بیده من اون شیخم پیدا کرده این شانه یه وقتی صغوطی هاتش عرض می کنم که کلمه اصل در طراز واقفیه آمده و احتمال این داره که اصلا در اصل این اصطلاح خودی این مذهب دی اثر نبوده از کلمه چون کسی نگفته من الان نمیتونه از خودم دارگاه این کردم اما توضیح افاده وقتی اصطورتان شواده رو و اگر این دور باشه سر این که مرحوم نجاشی این وضع اصلا ما نمیده احتمالا همین باشه یعنی استعمال کلمه اصل شاد از مذهب انحرافی و ها بوده الان کشه اصحاب ما علامات اعتبار و صحت و چنین و شنان الافری لیکن این احتمال حساله یک وقتی بینشان اون من کتاب این لبی علفه بعد الوقت بعده لیکن نهو افرالی که کتاب من شروخ اصحابنا الالذین ال علیه همول اعتماد که کتاب علیه ابن الحسن تاتوری تاتوری و این فنومن کار اشد الواقفیه الان اشدیش هم رو نیست ما ازادر امامیه و تان ام نشه شامل الالف فلسفه با نبو روا كتب و, و عن الرجال الموصوب به در روایت البته من همین چند پیش از 36 36 اسم این علي نندن ساطوري مي ورگم روايت ما چند ها این اشتباه نشه کلا روايت ساطوري علي بن حسن و علي بن حسن جرمی در از رواد با آن آن علیه و نرسان جنبی آمدن همیشونه تا طوری. ایشون روادش در کتاب ما زیاد نیست مرموم شیف بهایی بخواد علاقه ایرزاره که منن محامل صحیحه انایه حالت اینطور که ایشون میپرمون راسته یعنی این بالاخره بلکشانسه نهجه که این محامل بعیده نداره شاید مثلا طرف راستو بوده شاید طرف اصلا راوی کتاب معروفیه اینا اون کتاب رو نظرشون به اون کتابی این شخص اینا میدونه که این شخص به تعریف میکنه از فلان کتابه و اینشا این توضیحاتش شاید یک مناسبتای ارج می ما الان دیگه از خود داریم که معنیسمان کیف هم به یک شخصی نسبت داده شده هم به کی راوی کتابه نژوش هم داره و علام صادق حلول خلا این داره ما این مطلب رو در کتب خودمون اجمالا داره و ظاهرا این مطلبی که ایشون میفرمایه این همون نقطه فلسفی است که ما عرض کردیم البته ممکن رجالی هم باشه لازم نیست چه فلسفی باشه اخر اول گفتن رسالخویی که شما میگین ابن اعری عمر لاینت ولایت یوسف خب از علی ابن ابی حمزه بسائلنا که کذا این چطور میشه جواب شاید در نبی عمر ایشون صدا نمی ورسه اون موضوع رنگ گرفته مش مشکلت از صدام این جعلیه از این حدیث ثانی این در کل کذابه اون اصل این مطلب است چون بله در کتاب ابن فضل آمده که ایشون در کتاب کشی آمده که ابن فضل گفته ایشون کذاب شاید نبی عمر رو کذاب نمی دلیلی میشه یعنی مرحوم شیخ بهایی ورده رضی از علما این رو مفروغون مثال خوی همونتون مفروغون هم گرفتن که ابن مثلا علی ابن عبی همزه و سالی خب اگه کذابه شده شد ابن عبی همه روزش نقل جوابش روشن شد اصلی این روشن نیست از کجا منوز ابن عبی سر روشن سره بیرست اختلاق در وساقت و عدم وساقت اشخاص همیشه بوده چیز تازه نیست موزی یاد و ظاهر ان قبول از محقق روایت علیه نبی همزه من تأثبهی من مذهب الفاسد ممنیان علامه و ظاهر منکونهی منکونه ها محبولتن من اصلشون از اد... خب اینا میاد از کردنگیشون چنوزه زیاد صحبت کردی هم اثبات اصل و هم برای که از اصلشه خیلی بعیده و تعلیل هویش ارو بداله فه من اصحاب اصول. یه مطلب هست ارز کردم از قرآن فرسون شش و ماه هفتون به بعد انصافا این توی زبان ها زیاد جا افتاده بوده که مثلا اصل اصلی زیاد جا می بیش از اون اندازه که ما در مسادر اولیمون داریم خب ما خوشیه نداریم بسیار ما معامل حالا شما میکنه این که در روزی در بحث مقاسب و بحث فکرونی بشیم مساجه فکرونی شیف میگه لحظت خواب کبیر چی؟ ولی هم کتاب نمازه نجاشی میگه لفو کتاب. همین ایدیس که وقت نشه میگه سرکونی لفو اصلون چی میشونه؟ ما هم خودمان هم مگر همون توجیری که از کردم در ذهن ادویشون این بوده هر کتابی که از امام مستقیم این اصل رو نه نجاشی تعبیر و اصل میکنه از کتاب حالا این چون روز گفتم که در دردیم معاصین زمان ما بودن گفن است. این مال معاصین زمان ما هم نیست نجاشی در قرن پنجمه و شیخ توصی در قرن پنجمه باز این نجاشی دوتی لبو کتاب هستن نجاشی هم شیخ توسی فقط دار لبو کتاب کبیر ولبو کتاب نوازه اینجا شیخ توسی بیش از مرموم نجاشی داره ولبو کتاب نوازه لیکن ابن عزیز که یک بعده از سرکنی لبا اصم اگر از کجا رویسی این رو این مشکل هست یعنی این مشکل هنوزم برای ما حل نشده اینجا ملاحظه میفرمون مرحوم شهر باهایی همین راه رو رفته این راه رو قبل شهر باهایی رفتن خوب دقت بکنیم اولین کسانی که این راه رفتن از کنن واقعا نه این که حالا هم هستن وقتی در دو کتاب فهرست معروف ما مخصوصا که مرحوم ندرشی کتاب سکونی رو قراعت کرده نسخه داشته مجرد اجازه نیست میگه قرار تو علا ابن نو ایشون قراعت کرده کتاب ایشون میگه در اون کتاب به شیخ سوسی که که کم و تره در اون کتاب اون کبیر ولن اون کتاب را یک قرم بردش ابن الیلیس میگه لبو اصلا شد کتاب تبدیل به اصلا شد و این حالت ادامه داره یعنی وقتا اون کلمه ابن شراشو که چهارسیت ها اصوله اینه که ایشون میگه به تعلیل هوش که محقق رحمه الله در محتبر راسته از محقق و شهید اولو این محقق انسان احساس میکنه که این بزرگان نمیدونم حالا من نمیفهمم خود من هم و الله مثل ما که شخص بزرگواری اگر به کتاب نجاشی مراجعه میکرد شیش یه هفته هست بیشتر نگفته برزمشون اصلا مشهور نیستن از اون شیش تا زیر محل کلامه شیخ هم نزدیک هفتات سال شهست و نه تا هفتات سال یکی شهر خورده این همه تحبیر از رو به کار برده بوده. از این رو و بوده که، قول الانامه به صحت روايات اصحاب جرير انا صادقه علی خلاف نهو صحت اون از اصحاب اصول چون وارد موردی که در وارد وارد موردی اینطور نیست که مضمون شده با ای و تکلیف ها اولا اصول هم کان قبل از وقت نه هو در زمان صادق علیه السلام این مطلب که اجمالا ادعیشون مثلا قبل وقت تحبید داشتن احتمالش هست این نمیشه این پارشه اما خیلی عبوده هستم اون بچهیشون واقفیه بودن دو, دو واقفیه بودن شون واقفیه عرض کردم از زمان امام موسی نجفر که سال 182 هست تا آخرین نفری که ما از بزرگان واقفیه میشناسیم نه از مذهب وقت آخرین نفری که ما از بزرگان واقفیه میشناسیم امیر بن زیاد متوفای 310 این آخرین شخصه دیگه بعد از این تاریخ ما چهره علمی تو واقعه نداره این آخرین چهره علمی که ما از واقعه اطلاعی آشنایی داریم حالا اینکه اینها همه قبل در وقت نوشتم یک مورد واحد اثبات بشه این برای کارها کافی نیست فقط بلغنا عن ان مشایخنا قدس الله ارواحها ان او قد ده اصحاب و از هابر اصول، اما هم اداسمه آمین. میگم اصول رو اینقدر گونه یشون فرد کرده که آن را ترجمه میکنم. سمه آمین آهده لاین مهعیسند، بعد رو ایل اسواتیفی اصوله. لالا یه روز لام نسیاند و او کلی بعده. بعد از این بیان مرهمه شیربهخواری. حموم شیخ خکر می توانیم به کلام یا سر زمان خوب به سر حضر حدیث کتب الاروه و همسالات که خب بگه این اثباتش انصافا خیلی مشکل بعد مساله دیگری رو چون این مساله رو بعض خود مرموم ساب رسائل معیر میکنه چون همون بگیم قرائن قرائن قرائن یک مقداری حدث ما از خونده این کلمات مجموعه قرائنیست که در کلمات اصحاب ما داره تصحیح و حدیث آ ترسیح سندگی رجالی معروف. مثلا و مثل او یه حسیفی روایات صفات الاجلا که اصحاب الاجما انز زعقا والکذابین والمجاوی حیث و یعلمون حال هم و یعلمون انه و یعلمون به حدیث خب این میگم یک جوری بد نیست در اینکه که اصحاب یک جلالت شنیدان اجماع، نیست اما این که این مراد اینه که اگر از این نفر حدیث نهار مثلا اون حدیث صریحه یا اگر از دیگه نفر مجبور یا ضعیف هم نهار کردن توصیقه یا اگر توصیق شخص نیست علامات قبول حدیثه احتمالاتیست عرصی آدم ما باشیم و ظاهر عبارت کشی که خود کشی کتاب درست درمونی نیست ما باشیم و ظاهر عبارت کشی به این حرمانه میکنه اونو عبارت هم ربطی به این حوالم نداره این عبارت کشی اون نقطه فنی رو من چند بار ارز کردن در عباده کشتی. اون مای محصوله است نجمع اطلع و علا تصریح ما این مایسه خواهند جماعته این تصریح ما ما کنایه از چیه اده همین همی تصوراتیشون کنایه از روایت اگر روایتی تا اینها سریع شد بعد از این دیگه حکم به سیحتشون این, خب این شواهد می میخواد یعنی شواهد واضحی در کتاب کشتی در عبارت کشتی وجود نداره مثلا من گوارده بحث احتمالات چه میشونم شده وقتیه اصلا خود ارزش عبارت چندان که شما نیست خود دعوای وای اجماع که این شده وقتی عرض احتمال خیلی قوی دارم توی خوب عرضه ما کنایه از فتواه باشه نه کنایه از روایت باشه علا تصحیح ما یعنی پکابایی که اینها زدن این پکاباشون صحیحه صحیح یعنی تبروش قواهد علمیه یعنی اینا متهم به شدود در پکابا نیستن متهم به قیاس به رعی چون بعضی از اینها متهم به رعی بودن بود دقیقا از معطل اطابت رو علا تصحیح ما آزا من واضح بحث نیم خواهد اشاره. شاهدش هم واضحش شاهده واضحش اینه اصلا عنوان بابش اینه بابو تصمیت الفقه ها من اصحاب عبی جعبن و عبی عبدالله عنوانش روات نیست عنوانش فقه بعد میگه اجمع اصحابات و ما و واضحه به قدن فقه ها اون ماه موصول مراد بهش نه مراد روایت باشه. چون اینا عدهشون حتی بزرگانشون مثل یونس. یونس متهمه که قاله به قیاسی مثلا یا متهم که احالیت زعیفه رو قبول کردن یا الاخرهی ولیزا از سره این, این اصلا ربطی به دنیای رجال و حدیث و تعلیف و فعرست و و این 21 نفر 2 نفر و 23 چونه 18 تان سطح 6 تانیز بس جابجا گذاشتن با اون جابجایی هایی های کده 21 نفر هن. این مجموعه 21 نفر یا 22 نفر هایی هایی هایی هایی هایی هایی هایی هایی این مجموعه 21 نفر و 22 نفر رو من کراهن عرض کردم مرحوم نجاشی در هیچ جای کتاب خودش اشارتون ماییم به این معناه در برسابه اجمان و کراهن عرضت این بیریم تن مرفه مرحوم نجاشی نسبت به این اصابه اجمان بعد حتی توصیم هم نکرده نکرد توصیم مثل عبدالله نبوکه بعد یه بار توصیف کرده بعضی دو دوبار توصیم کرده یعنی واضحه که این اصحاب اجماع حالا که مثلا البته این هست در کلمات محقق حدید آمده یعنی این تمسک به اصحاب اجماع البته این گراه های بدی نبود اون من اعتقاد من اینو خوب دقیق بکنه اصحاب ما وقتی که آمدن به تنقیه حدیث رو خوانده بردازن با یه مشکل برخواد که این مشکل جدی واقعی است ما اگر رفت کنیم روایات اهل به کلان داریم با اون مقدار مصادر رجالی که داریم این فرسون رجال برگی و رجال شیف توسی و رجال کشی نیست داری فهرست شیخ توسی و فهرست نجاشی دو تا فهرست و سه رجال جال و کتاب نمازداری که اون بیشتر خراب مکنید درست ما اگر بخواهیم روایات اهل بهت اونی که الان داریم با این مقدار معلومات بسنجیم این شاید به زور بیست سرصد روایات که ها بده اصلا بلند روایاتی بخواه مسابه رجالی ما نسبتش با روایات ما در بوده بیست سرصده اونه خوب در خیلی مسابه ما ضعیبه لذا به نظر من شاید مثلا فوقهای ما یواش نواش این فکر افترانی که شوارد دیگری ایتگاه بکنن مثلا یکی ایش از خواب ایش ما با... اینجا مروح که باهای اوزه یکی ایش مثلا اصول ارمه هی hey, راه های در قطعه هم یعنی این واقعیت داره ما با دیگر قبول بکنیم ما الان باید موشت این سنیان سنی هم میوشتن سنی این آسر هم دارن قدیمی هم دارن این خیلی معروف و که کتب رجالی شیعه خیلی مع قول بندشون همیشه شمکن برنزه یه جلگزان بیتانه اصطاد نمیشه راست میگه کتاب ما کمه اینجای بحث ندارید علاقه ایت از اون مردار کمه شد اصلا این واقعا جواب رواید از اما هست مشکل اصطورتی اینه اون چه که از حال ما زحمت کن اصطورت ما از حال ما زحمت نه؟ گونه خودن به یک زحمتی این روایت به من رسوندن ما اگر بنا این اصول رجالیه رو در این کتاب مجاری الرجال خوب پای احمد صدق عل نگاه بکنید ایشون رو اصول رجالی قرائت در حواشیش هم مثالی داره البته بعد از بیان شرح حال ترن یک مثلا در قرآن و قرآن و قرآن عنابی فران و ایابند و قرآن و فلان یه مقدار اونان که میاره برای ایجاد شواهد بیشتر و ایشون اصول کتب رو از قصایص کتاب اه... کتاب مجموع رجال مرمون قهپایی عین اصول رجالی رو اوبرده تصرفاتی که کرده هاشی خودشون. مرم و هاشیه داده خودیشون مرمون قهپایی از قهپایی اصمانه و واقعا خیلی زحمت شده این, این کتاب کتاب بسیار نافعیه این صاحبا. یعنی انسان در رجال یه دوره این کتاب باشه به باشه بنظرن ضروریه چون متون بوده و نسخه بدی هم ندیشه از این متون مضمون متون البته نسخهش با بعضی ها حتی در نجاشی با نسخه ما هم فرق داره هم خودش حواشی خوبی داره حساب به زمان خودش و نصاد ببین که مثلا خیلی الان ما آشنایی باشن حتی ماشیرا کردن این کتاب موجود نبوده ابن پیر زن شده تو اسمان. توی صندوقشه کتاب رو که از آما ذنده ای و این مجموعه رو همین نخه اون حاصله کردن که یار شده. انصافا کتاب نافعی. بین ای بین الله بسیار کتاب نافه مجموعره جا پایین بسیار بسیار کتاب لطیفی. خیلی خیلیطنی هشت و زواع چند داره نکات صنی فراوان داره خیلی قابل استفاده از این کتاب انصاف خب شما اگراف سود داره جای ماره نبه همه مجموعهره جا پایین تا هواششیش هم میز که توی متن خود ایشان اضافه داره مثلا اگر یک نفر رو نجاشی در سه چهار جو به مناسبت اسم مرده وقتی از نجاشی نه گفت میگه بنظرم و تقدم فلانایی در فلان و فلان توی متن داره یعنی کتاب متحرر در اصول رجالی نیست بلکه خودشون اصول خمسه اثر این کتاب به اسم اصول خمسه معرفه این اصول خمسهش ابن قزاری است و رجاله شه بر رجاله کشی بهها فهرست نسبی رو شد این اگر رجاله برغیرم اضافه کنیم مثلا شه شیشه اگر فهرست ابو القاسم زراری ان اضافه کنیم مثلا شه حفصه به داخلی که من نمیخوام وارد خصائص این بحث بشم این کاری که مرحوم قوه انجام داده، اگر شما حذفش بکنید کلمات کلماتیشون رو کل اون مرداری که در اصول خمسه بوده مثلا رجالی که یه مقدار زیادی شاید اسم برده اصحاب باخر اوائل مثل اصحاب رسول الله اصحاب رسولی که اصلا مشکلات فنی دارن من واژه بحثی نمی‌خواد میشه اصحاب غالباً تو این اصحاب ها توثیق کم داره فقط به دلیل اینکه میگه این واجزه اصحاب از سنجاز یا اصحاب امام باقر حالا نازاده درست غلط ایده غلط در نزد شیخ احتمالا مثلا ابو جعفر بوده خیفت امام باقره با این که مراد امام جوازه. مثلا ممکنه ابو جعفر مراد امام جواز بوده ایشون به امام باقر نزنن بله آفری از این جا به جایی ها مرمون شفت تو همین رجالش هم داره و مناشه ای داره علایه حاله مثلا ترسیم در اصحاب صادقه رجال شفتی در حبود کمتر از اون رجال صادقی که ابن عقوده نوشته ابن عقوده چار هزار نفر رو اسم وارد در اصهاب ساده مرحوم شیخ مجموعه سه هزار هفتسد و پنجاهتسا هفس مرحوم اسم ورده شاید نزدیک هشتادو پنج تا نود درصد ان توثیقم نکرده حال اسمش وردي و لذا انصافش این ما باید قبول بکنیم لا نمیخن با سنیا در بیفتي اونا انها البته اونا اونا اولا راوی بیشتر از ما دارند تعلیف بیشتر از ما دارن. انصاف... حالا ما کار نداریم ای که اونا چه اشکالیم اشکال, اشکال اونا دلش بکنیم بشه از خود رو ما هستیم با یه میرات بسیار بزرگ از روایات اهل بکنیم این کارش این مقدار مصادر رجالی ما به درد این روایات نمیخوره این مقدار مصادر رجالی ما این که اشکال چار رو ما دیوید مال علامه این اصلا و لذا راهانی دیگری لفته شده یعنی این به حالا مرمون یا شید اول یا دیگران اینا اصلا روی این التفات بگیده اشکال این کار کردن و انصافن هم حرف درستیه یعنی انصافا ما بعد از دوران مثل شیخوین ها کارهای رجالی تأسیسی کم داریم اما این متعشکلی شروع کردن استفاده کردن ای درست رو کنیم اصحاب اصول و, و اصحاب اشمانه و اصحاب کنیم همین انابینی که ما می درست می کنیم و انصافن هم باید این راه رو بریم و الحمدلله روی انایات علاقی که بوده به رواهات احرابی هنوز ار هم شواهد زیاده ما نمی کنیم کل رواهات احرابی رو با اون میراث موجود تا قرنه هنجم حل بکنیم اصلا این هست که خلاصه علامیشان در خلاصه علام کلش ده نفر رو میشه اثبات توسعهری که در مصادر نیست اصلا نیستم وگرنه نیست نمیخوام وارد بحث بشم باکه اینساهم بعدی ها خوب کار کرده تقریبا خود همین کتاب مجمع الرجال در حواشیش خوب زحمت کشیده میخوام بگم درسته این به زمان خودشون خیلی زحمت کشیده کتاب جواهرباد مقدم اردبیلی خیلی زحمت کشیده طبیبا میشود او به اولین کتابی که سعی کرده حتی اسماعو در رجال بیش از اون مقداری که سابقا مطرح بود بیاره مرموم عبدالدی در جامعان رو خیلی زهنفیسی جاید اینشان ایک که که که که که به کارهای رجالی و کیفیت کاری که شده یک توضیحات رو از خواهی میکنم فلابد من حمل فعلی هم و شهادت هم علاوه بله به الله لازم ذهب و جمعی روایاتیم یعنی به ظهور ذهبه یعنی ایمه که راسته این مطلب این مطلب نه به این تأویر مرهومه تأویر مرهومه و وسایی که میتونم مشکل داریم نمیتونیم بینیر بین الله اون روایات فراوان اهلویت رو با این مقایستی که الان دست ما درست کنیم. یعنی ما مجبوریم از عبارات شیخ و نجاکی و برقی و ابن غزاری پا فراتر بگذاریم و باز هم بتوانیم اصوات میکنیم سهت دیگه درز روایات یا وساقت دیگه درز روایات رو بیش از اون مقداری که در ویرازهای ارجالی متعارف ما موجود و قدره طرفش شیخ حسن في معلم و منطقه شیخ حسن رو بیشتر ذکر میکنم صاحب معالم رو به خاطر که اطولی و مثل حالا مرموم صاحب مداره عمل به احادیث صحیح و حسنه میکرده پی ادت موازه در نه احادیث کتومن المعتمده محکوفتون بالقرائن این توضیحاتو شما نهارز کردن این عمل کلام این قرائنه ما این اولادای که میخونیم هی یاشواشون قرائن رو بیان میکنیم و هم در متقدمین لا زمن الاللامه کام یحمدون بالقرائن لا بحال الاسطلاح مشهور بعده بود راسته این مطلب را من دیروز و پیدوز توضیح زیادی دارم بعد مثلا از شواهدی که باز مرحوم هر میارم عبارتیست از سیدن مرحوم سیدن تاوز در کشکل محجه فی لسمنت المحجه که کتاب بیش خطاب به پسرش نشیم فی وسیعیتی لگرده ایشون اینطور تغییر کرد مرحوم سیدن تاوز آخر کتاب. نامه است که امام امیرالمومنین (ص) و فرزندشون امام مشابه این نامه توی دربرغم آمده اما در کتاب اصل این نامه در کتاب رسال دائمه مأمون کلینی بوده این کتاب ظاهرا در اختیار مأمون سرتاوس بوده ایشون داره رأی شیخ متفق و علا و امانته محمد بن یعقوب کلینی حالا اون بحث مولا راقتیش اینجا نمیگه چون واقعاً این که این که کلینی اهل کدوم منطقه هست اون کدوم بیه اصلا اون کجا هست اصلاف خوم بین خوم تهرانه اطراف تهران, تهران و زفت فارسیش گلین بوده یا گلین بوده یا گلین بوده یا کلین بوده یا, کلین بوده؟ یا گلین مثلا ادهی موازنانشون صحیحش همون کلینیه نه کلینی حالا ما هم لفظ کلینی با غلط قلط مشهور و اصولاً تشریفه الان آمین که تهان یه آنی هست نه قبل از حسن آباد علی آباده قبلش علی آباده ولی که این کلین از اون الان که علی قبلی قبل شیخ یعبوب کلونی قبل بزرگ الان تو علی آباده. مو درست هم کرد و آن واقع کردنم روشن نیستم که این ده کجا است؟ گلینه، گلینه، گلینه چون لغت فارسی بوده حالا گل بوده، گل بوده کدومیگیش نیست؟ امروزان تو کل نیستند. ولی احتمال داره بخاطر اونه. و از شیخ کاند اصلا یعنی اینجا نیستم. پشکوشم اونجاست اون اصلا در تهران اون طرف تهران. این واقع نیستیم. واقع از شهر کاند حیات او در زمان بطلاء المولانا المهدي السلام اصمان ابن سعید الامری عثمان ابن سعید که از ما بچه بوده شون اصمان ابن سعید از دویست و تا بوده یعنی سه سال قبل از رفاقی ایشان رفاقشون بلید ایشان عمرشان. و بلد دیگه عبی جعفر محمد راسته عبل قاسم حسین رو و عبل حسن علی ابن محمد سماری رضی اللہ عنوان روشتونم مشایخی رو که شیخ کلنی داره یه تا دیویست و نرد. حالا از بعضی این مشارقشون این ماریشون این پتر رو میخورن اما پدر میموند و صحفی محمد بن قبل وفاق علیه محمد سمری که نائب شارم بوده فتصانیف و, و حاضر شهر و رفتانیاد و پیزن و اوکلا این مذکوری راسته فتصانیف ایشون در زمان اوکلاست اما چه داشته با این هم کلام این روشن این مقدمات یکی ایشون بله ایشون میخوانی و یه قدیم از اون واضحه حد کتبه و سبوت ها خیلی حتیب از من میشه الان رامونی الان بعد یه هم از رجیزه راجع مرد یه کلیمی آورد ایک به درد کار نمید. بعد یه عبارتی از مفید در شاد آورده حالا این چند لحظه آن نشیدی ما این سلام اینجا قلعا کنه. از ساد و قر� نباهت یعنی خیلی بالا خیلی والا نه بالا والا و شایسته هست و اعظم هم قدرن و اجل لهم که لآم مثبت خواسته مرتبط بالاتر به و مثل خود امان باقر بالا تر بودن رویشون به قریه فرزندان امان باقر و نقل الناس و انهم نل علوم ما سار از به رخواه این راسته ما اگر مجموعه رایاتی کرده ما مصادف سریعن و زهی پنجه هم شخص هست جل مثلا از زیل اگر جمع بکنیم این با مثال سهیم و سهیم شاید دو جلد هم سه جلد یعنی کل علماء احد من اهل بیتی ما نقل هن راستیم اصحاب نقل و اسما عرب من از این سقاط داره قرارو شده مفید. این رو داره یعنی به یعنی ایشون اصماء ثقات رو علا اختلاف انفل آرائه و مقارد و کانو اربع سالاب رکیون شهار ادار رکیون این هست این در کتاب ارشاد هست از همین عبارت هم اده استفاده کرده. از فرم روحای بردرست هم استفاده کردن از این عبارت استفاده کردن تمام افرادی که در کتاب رجال شهر توسی تو اصحاب و صادر هست رفتن منشهش کجا از که این تعبیر حالا از کجا معلوم شهر مفید ما هم نمیدونیم این صاحبه. ما هم کلمه سقاطش خیلی سنگیله چون ما اینی که میدانیم اولین کسی که این عدد شهرزدار رو عدد تاریخ میدیم ابن عبد مترفقه سی سل و سی و سه ابن عبدی فیدی خیلی پر حدیث ابن عبده کتابی نشه اون زمان رجالی جدی نوشته میشد. از چند با؟ مثلاً فلان این و فلان. ما فلان این و فلان. دلیل برای اینکه یکی ما یه یک رواج ندارد، هدف این فلان از این شهر نصدار است. اسم ایشون رو یعنی رجال اینجور نبود که ابن اعوذ از گرفته باشه رواجاتی موجود بود و این را مونته میشد به مسلمان جهت. اسم اون را رو ابن کتابی در رجال جمع کرده اینطوری چرا طوری این کتاب تکنیلن شده بود مثلا یک مثل شما مصدده میگوه انسان اصحاب هردی اصحاب الحسن برمیگه که هرچی رو باید به منطقه بوده به محسن شخص میگوشید که اصحاب الحسن یه قیلات هم از طرف در خصوص اصحاب الساده چهار هزارت شده روشن شد؟ نه این ایشون چهار خبر داشت این ها از ها به ما هزار روایت دیره حالا اون روایتداری ای ای تو این فر۴زار مدارتون فقط بر بر. آایه مشکل این است یه مشکل کلی که قبل از این که بخوان با ما سر بکنن و باید منابع ما را زیر سال ببرن خ یه مشکل البته این مشارال سویات دی یه مشکل کلی اینه که این خودش ارزش علمی ش خود اگه توشن نسید حالا این یک دو این... یک مشکل که همه سوش گیل کردیم بقول مرمه ها کرده بودیم این کلمی سقاطش اضافه کرده شکل مفید این که خیلی کار. چون اونی که در شعبه ها دیدونه او دو نمیشن نمیشن سقاط و عرض کردن معلوم های افتایی خدستال لانسته من گفت این طور. من جمع کردم هر زار خورده ای شدهن یا ن سا مجموعه روایاتی که تهیم که به ما سادهشون رواسگی ببین این اون ممکنه از ضعیف باشه کذاب باشه از مرسل باشه. م سر رو خدااحسا که که اوباره این جمع رجاری اینجوری. خب این ارزشهشه خیلی ض ب این برای ما هنوز مبهمه، مثل همون الها ها یکی شهراشو، از شهرآشوب از قول شیخ مفید که ما تا ارش داره که دیگه این نیست میگه شیخ این،, این عبارت. اصول است در کتابیشان نیست اما این توی ارشاد هست به من خیلی کرده، کردم چون من اصلا کردم که این ها اضافه شد. تو ارشاد هست. از سواد. به اضافه توی ارشاد فعلی هست راست از وقت به ثبات شده ما که هیچ علمی برای نداریم حتی بعضی از آهیان یکی از مهلا ما صرف که مثلا نجوشی به هر کسی که گفتی رو جهر حقیق رو سر افنا بیشتر آز این اون چهار هزارت که شیط موبید ما طبق شبالتاریش نکنون بند گرفت ابن اوغده و این ساها ابن چون در کنید اصطلاحاً در اون زمان نجوشه هم داره کان اخباری هست یعنی اخبار هرچی بود نمی یه خیلی تنقید نمی کنید اصطلاح اخباری می کنید خانی نخانی تو ارسانون زعف زیاده زعیف و مجهور و محمد و اینجور اصطلاح مشبه و اصلا ما محسن قدیم فرصا مثلا فلان اصطلاحشت خود محوم شخصوصی اصلا اصلا اصلا خلقه اصلا م نه آمده می‌داریم در, در مجموعه روایات در مجموعه میراث‌های رجالی درج شده و چند بارم هم ذکر شده یعنی دیوته مرو نومانی که چون شاگرد خود صاحب و خود نام نومانی خب یک مقدار کوچیکش که روایات ابن اوده هم کمه خود زیاب نداره در وقتی عرض کنم میشه منشی سال نامه که از آثار ابن در چیزی خود زیدیه ها هم آثار فراغانی از ابن اوغده ندر آثار ندرین تو بیشونه که باعتم نداریم از آثار نو. ما از آثار ابن اوغده که ما داریم در امامیه فرصه در کتاب مرحوم نقمانی ایشون از ابن اوغده نستن معتنابه در غیبت زیاد نهمون از خود ابن اوغده تو اون اصلای زدیک و محمل و مجبول و مشترخ اونه زیادتون اصلایی که خیلی اگر اون هزار تا و بقیه اصلا توتوگرزیالیشن به همین ترکیب انجام داده انصافت خواهی از اون علمی نیست الان آیا حالا یکی از چیزهایی که بعدها منشر شد با قول بردمیان توصیحات و به یک حوض پوستر که ده رو پاک کرده به ده, ده از مجادی به یکی از چیزهایی که بعدها افتاد در کلمات حساب ما که منشر توسعه بدیم در توسعه وارد زیاد وارد بکنی همین عبارت معلوم چه مفید باشه. از نظر علمی اثباتش آن خیلی مشکله. الان خیلی مشكله. الان نمی‌تونید تایید بکنیم این مطلبی رو که معلوم شه